ناگه هم فکری به خاطرم بغزد. فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشم را بسنجم از پشت میز برخاستم، به طرف در رفتم دستگیر را گرفتم و گفتم اجازه میفرمایید من سری به کلاس ها بزنم گاهی شاگردها در کلاس میمانند و این برخلاف مقررات است آنها را از کلاس خارج می و فوری بر میگردم. که به اتفاق به تالار موزه برویم. خیلیتون می آقا ممکن است اجازه بفرمایید که من با فراش مدرسه بروم انقدر هم حوصله نداشت آنقدر هم برای من اهمیت قائل نبود اول که من باید در خدمتتان باشم به علاوه پنج دقیقه هم طول نمیکشد گفتم و در را باز کردم و از اتاق خارج شدم با کمال عجله به تالار موزه رفتم غلام در را باز کرده در آستانه تالار منتظر من بود به او گفتم قلام، تو دیگر منتظر نباش. برو خانه. من خودم در را میبندم و کلید در امارت را به سرایدار میدهم. برو جانم. به محصه اینکه که از پلا پایین رفت، وارد تالار مونزه شدم. چراغ روشن بود. با ولهی که هرگز در خود سراغ نداشتم، به طرف پرده چشم پایش رفتم. گوی برای نخستین بار با این پرده روبرو شدم. گوی سالها شهان را شنید و، کپیه از آن رو دیده ولی خود آن را هرگز به چشم ندیدم گویی از نوجوان شدم و تازه دارم با نخستین زنی که میخواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه میشدم چشم های دیگر برای من معنی داشت چشم اراده من را هم کرد چند دقیقه با آنها خیره شدم تمام فاجه زندگی استاد در نظرم جان گرفت پشت این زن پر حرف باید به زمین مالید مینگه و نقشه خود را می میکردم چراغ را خاموش کردم که از بیرون کسی متوجه نشود چه کار دارم میکنم در انبار را باز کردم پرده را از جایش برداشتم و روی میز گذاشتم و دستی روی چشم ها کشیدم مثل اینکه با لمس لمسانها بیشتر درک میکنم بیشتر لذت میبرم گرد لطیفی روی پرده حس کردم خاکن را با دستمال گرفتم تابلو را بلند کردم با هر دو دست روی سر گذاشتم و به انبار بردم. تابلو سنگین بود و من ناتوان. حس میکردم کردم که دارم زیر بار خم میشم. نفس زنان دو مرتبه به تالار موزه برگشتم. چند سانی روی چارپایه نشستم. عرقم را خوش کردم باز به دفتر آمدم و گفتم بفرمایید خانم من حاضرم همراه شما بیایم. روی صندلی راحتی نشسته بود و تصویر استاد را تماشا می کرد. به محض اینکه صدای مرا شنید، بلند شد که فشار که روی زانویش بود برداشت. فن را،, را به دست آویزان کرد و گفت: "مچکرم آقا." دم در ایستاد. در را نگه داشتم و وقتی فرانگیز خارج شد، در را بستم و غفت کردم. فرانگیس منتظر نشد که راه را به اون نشان دهم. معلوم بود که خودش راه را بلد است. از ها بارا رفت و من دنبال او بودم دم در تالار ایستاد من در را باز کردم و داخل شد در تالار را بستم و های تالار را روشن کردم به محض اینکه تالار روشن شد در صورتش خیره شدم جای پرده چشمهایش روی دیوار روی پنجره خالی بود نگاهن در روشنایی متوجه شدم که چیزی کم است اما فرانگیز متوجه نشد شاید هم خیال میکنم، نفهمید. یک نکته برای من مسلم شد. این زن با خوش و با استداد است و با آسانی میتواند به جلدان موجودی که میخواهد نمایش دهد در آید. لازم شود با یک نگاه چشم، با یک حرکت لب و با یک چین روی پیشانی میتواند خود را با عاطفه رقیق و قبل با و فکورجل جلوه دهد. با یک لبخنده بسیار از پا شاید میخواست نشان دهد که متوجه چیزی نشده اما من فورا احساس کردم که تالار موزه بدون پرده چشمهایش از آن استاد نیست رفتم وسط تالار کنار بخاری نفتی استاد اما زن را تحت نظر گرفتم فرانگیس از سمت راست شروع کرد به تماشای پردههای نقاشی استاد من در وسط ایستاده بودم به هر طرف که او میرفت میچرخیدم و او را میپاییدم مقابل بعضی از این, این تابله کمی مکس می کرد. بعضی ها رو ندیده می گرفت و میرفت. این زن یک تماشاگر کننده عادی نبود. خود را هنرمند هم نمی خواست دهد از خود می پرسیدم برای چه اینجا آمده؟ این چه حوثی است؟ من همیشه او را از پشت سر می دیدم و بر... به هر طرفی که او می چرخید من هم می چرخیدم. دیگر نمی به چشم های این زن نگاه کنم. از نگاهش پرهیز می کردم می از پشت حرکات او را بدون اینکه تحت تأثیر افسون چشم ها و زیبایی صورت بشوم تحت نظر بگیرم هنرمند و خبره به نظر نمی آمد اما من آدم های کنچکاف هم هنگام تماشا گفتشان می و دهانشان باز می ماند نمی نمود. از کنار بعضی تابلوها تند رد می شد گاهی منکت می کرد. نگهان چندین قدم تند برمیگشت و پرده دیگری را زیر نظر میگرفت. گویی تمام پرده ها را میشناخت و در هر یک از آنها چیزی دوست داشتنی بود میفت. از وقتی که وارد دفتر شد این زن نخستین بار بود که زبانش بند آمد. هنر استاد بر اون یا قدرت خاطرات گذشته او را کوبید. یا هر دو؟ من مانند فرماندهی که نقشه را طرح و یا اجرا کرده و هر آن منتظر خبر پیروزیست در استراپ بودم. درم میتپید. آن به کامیابی خود اطمینان داشتم. غیظم گرفته بود. بی خودی با خود حرف می زدم. به خود میگفتم به من بی میکنی؟ به من محل نمیذاری؟ برای من آسمون ریسمون می با آدمی که در زندگی از هیچ کس توقعی نداره و همین جهت زبانش درازه با آدمی که دیمونه استاده با آدمی که شبها خواب چشمای تو رو دیده با من با کسی از همون اول نگاه هاد و اطفار تو رو دریافت و فهمید با چه کسی سرکار داره حالا ببینم که چه چیرین زبانی می کنی. حالا ببینم که به کی خواهش رو التماس می کنی. یقین داشته باش افسون چشما همون اولین بار بود دیگه گذشت من قافلگیر شدم مردی چون استاد را از در دی باید به میدو اراده من باشی اطمینان به کامیابی قطعی بود با وجود این خوره دودلی دست از تن و جان بر نمی داشت و تارهای روحم هم را می‌خورد. خود مبادا این زن برای اینکه خودش را لو ندهد اسمی از پرده چشمهایش نبرد آن وقت من باختم نکند که این زن خودخواه برای پنهان کردن اسرار گذشته زندگیش بر روی خود نیاورد که آن پرده اصلی در تالار وجود ندارد. زن ناشناستاش به جای خالی پرده مفقود نزدیک می تشویش من هران فزونتر می شود. در این حال بیشتر خودداری می کردم. برای من موضوع این زن مرگ یا زندگی بود. برای من موفقیت یک زندگی بسته موقعیتی بود که داشت نصیبم می شود. اگر من نتوانم اصلا زندگی استاد را به مردم ایران حالی کنم دیگر چه فایده از زندگی خود بردم؟ اگر مردم ایران امروز که روز تلاش و کوشش است بفهمند که استاد چه سر ناترسی داشت و چگونه مبارزه می کرد اگر امروز بتوانند درک کنند که نقاشان بزرگ ایران در این حال در امور کشور خود مستقیما دخالت می و سرنوشت خود را با سرنوشت مردم کشورشان تو هم بله، آن وقت بیشتر تشویق می شدند. بیشتر می زدند و می خوردند و خوره یعص و بیعلاقگی کمتر در وجود آنها تأثیر داشت. باید به هنرمندان گفت و فهمان که استاد نقاش را چرا تبیید کردند. اگر کسی در آن دوران ستمگری که پدر با ترس و لحظ با فرزندانش هم بام بود ایستادگی می کرد، امروز که آزادی عمل بیشتری در اثر کوشش از خود های همین امسال و سال و هواخواهانش برای همه کس فراهم است برای هر انسان زنده‌ای وظیفه‌ای هست. اما دل هره من فقط به این دلیل نبود. خودخواهی من هم اثر مهمی داشت. آه، اصلا اصلاً وقتی در تالار موزه ایستاده بودم و زن ناشناس رو با چشم دنبال میکردم، می‌کردم، آنچه امروز به این روشنی و دقت می‌بینم گستست و بی بند و بار در نظرم موج میزد. بله خودخواهی من هم اثر مهم می داشت بالاخره من تنها کسی بودم که می توانستم پرده از روی زندگانی پر مشقت و ساد بردارم من تمام تابلوهای های او را امیغن و دقیقا مورد مطالعه قرار داده بودم تمام یادداشتهای های هوشی کتاب را خوانده بودم کی درباره هنرمند به اندازه من زحمت کشیده بود خونه دل خورده بود مثل من استاد را شناسد چقدر از زندگی خود کوشیدم که هنرمند شوم بدبختا وسیله وسیله نداشتم با وجود استعداد برای من دیگر جز تجسم زندگی استاد هدفی نمانده و کلید این موفقیت در دست این زن است من حاضر بودم که در برابرش زانو بزنم تا منش را بگیرم از او بخواهم که تقاضای مرا اجابت کند